ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز فصل ششم بخش دوم تا اینجا همه چیز را بیش از حد ساده کردم و حالا وقت آن است که بعضی شرایط لازم را معرفی کنم من از اصطلاحات ابتدایی ژن خودکشی برای نجات زندگی تعدادی از خیشان نزدیک صحبت کردم بدیهیش در زندگی واقعی از حیوانات این انتظار نمیرود که دقیقا حساب کنند میخواهند چند نفر از خویشان خود را نجات دهند و اینطور نیست که محاسبات همیلتون را در فکرشان انجام دهند حتی اگر به طریقی توانستند بفهمند که خواهر و برادرشان کدام است در زندگی واقعی باید خطر آماری مرگ خود یا دیگران را جانشین خودکشی قطعی و نجات زندگی کرد حتی ممکن است نجات جان یک عموزاده سوم با ارزش باشد در صورتی که خطری که متوجه خود شخص می شود ناچیز باشد. علاوه هم شما و همان خویشاوندی که می خواهید نجاتش دهید بالاخره روزی خواهید مورد. هرکس یک میزان امید به زندگی دارد که کارشناس بیمه می تواند با ذریع احتمال اشتباه معینی آن را محاسبه کند. نجات زندگی خیشاوندی که به زودی از کهولت می اثر کمتری روی خزانه ژنی آینده می خوزرد. تا نجات زندگی خیشاوند دیگری که همان نسبت را با ما دارد ولی زمان زیادی از زندگیش را پیش رو دارد. آن محاسبات شست و متقارن ما در مورد خیشاوندی باید با محاسبات درهم و برهم کارشناس بیمه تعدیل شود. از نظر جنتیکی، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نوه به دلیل یکسانی باید نسبت به هم ایسارگر باشند. هر دو در یک چهارم از هایشان با هم سهی اما اگر امید به زندگی در نوه بیشتر باشد ژن ایسارگری پدر بزرگ و مادر بزرگ نسبت به نوه از نظر انتخاب ترجیح داده می شود به ژن ایسارگری نوه به پدر بزرگ یا مادر بزرگ کاملا ممکن است سود خالصی که از کمک به یک خیش دور ولی جوان حاصل می شود بیشتر از سود خالصی باشد که از کمک به یک خیشاوند نزدیک ولی مسن به دست می از غذا لزوم ندارد که امید به زندگی نوهها ها حتما از امید به زندگی پدر بزرگ مادر بزرگ بیشتر باشد. در گونه هایی که میزان مرگ رو نوزادان بالاست شاید عکس این حالت برقرار باشد. برای بست قیاس با کارشناس بیمه باید افراد را بیمه کننده عمر در نظر گرفت. از هر کس می شود انتظار داشت بخش معینی از مایه خود را به خاطر زندگی یک نفر دیگر مایه بگذارد یا آن را به خطر بیندازد. او با توجه به نسبتی که با آن شخص دیگر دارد، همچنین با در نظر گرفتن اینکه آیا آن فرد از امید به زندگی در مقایسه با خود شخص بیمه کننده ارزش خطر کردن دارد، تصمیم میگیرد. اگر دقیقتر صحبت کنیم، باید به جای امید به زندگی بگوییم امید به تولید مثل یا حتی دقیقتر از آن توانایی کلی برای منفعت رساندن به ژن خود در عمر پیشرو را باید به کار برد آنگاه برای اینکه رفتار ایسارگرانه رو به تکامل دهد باید خطر خالص ایسارگر کمتر باشد از سود خالصی که به دریافت کننده می رسد. ضرب در میزان خویشاوندی خطرپذیری ها و منفعتها باید به شکل آمار بیمهای پیچیدهای محاسبه شود که من خلاصه کردم. اما از یک باشین بقای بیچاره چگونه انتظار انجام چنین محاسبات پیچیدهای را میتوان داشت. آنم فوراً و با اجله، حتی ریاضی زیستشناس برجستهی چون جه به در مقاله در 1955 با مسلم فرض کردن پخ شدن ژنی که برای نجات اقوام نزدیک از غرق شدن بر همیلتون پیشی گرفت. گفته است در دو موقعیت که خود من آدم در حال غرق شدن را نجات دادم در حالی که زندگی خودم خیلی کم به خطر افتاده بود فرصت هیچ گونه محاسبه ای را نداشتم. البته خوشبختانه همانطور که هالدین خیلی خوب میدانست لازم نیست فرض کنیم ماشینهای بقا این محاسبات را در ذهنشان آگاهانه انجام دهند درست همانطور که ممکن است ما بدون اینکه حس کنیم چه کار داریم انجام میدهیم از یک خطکش محاسب استفاده کنیم که در واقع استفاده از لوگاریتم است و همین دردید یک حیوان ممکن است به طوری از قبل برنامه ریزی شده باشد که رفتارش به نظر برسد محاسبه پیچیدهی را انجام می دهد. تصور این موضوع انقدرها هم که به نظر می‌رسد مشکل نیست. وقتی کسی توپی را به هوا می اندازد و دوباران را می گیرد، طوری عمل کرده است که انگار مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل را برای پیشبینی مسیر توپ حل کرده است، شاید او اصلا نداند یا برایش مهم نباشد که معادلات دیفرانسیل چیست. اما این موضوع تأثیری در مهارت او در گرفتن توپ نخواهد داشت. در سطحی نه کاملا آگاهانه چیزی که در عمل معادل محاسبات ریاضیز جریان دارد. و همین نه وقتی کسی با مجسم کردن همه نتایج ممکن و سبکسنگین کردن همه معایب و مزایا در مورد مشکلی تصمیم میگیرد در عمل کاری معادل یک محاسبه ی سنگین چیزی در حد توان یک کامپیوتر را انجام داده است اگر قرار بود کامپیوتر را برنامه‌ریزی کنیم تا مدلی از یک ماشین بغا را شبیه‌سازی کند که تصمیم بگیرد آیا رفتار سازگارانه داشته باشد یا نه احتمالاً باید به صورت زیر پیش می‌رفتیم اول سیاهی از همه کارهایی که آن حیوان میتواند انجام دهد می میکردیم بعد برای هرکسی الگوهای رفتاری یک محاسبه مفصل انجام میدادیم به همه منفعت یک علامت مثبت و به همه خطرهایی که علامت منفی میدادیم همه سودها و همه زیانها را بعد از ضرب کردن در شاخص نسبت خویشاوندی و سنجیدن آنها با هم جمع می میبستیم برای ساده کردن کار می در ابتدا ارزش های دیگر مانند سند و سلامتی را ندیده بگیریم چون میزان خویشاوندی هر کس با خودش است یعنی 100 درصد جن خودش را دارد جایی هر ندارد از خطرها و منفعت او اصلا چیزی کم نمی شود بلکه آنها در محاسبه وزن کامل خود را دارند جمع کل برای هر یک از رفتارهای ممکن باید چنین چیزی باشد سود خالص آن الگوی رفتار مساوی منفعت برای خود منهای خطر برای خود به اضافهٔ یک دوم منفعت برای برادر منهای یک دوم خطر برای برادر به اضافهٔ یک دوم منفعت برای برادر دیگر منهای یک دوم خطر برای برادر دیگر به اضافهٔ یک هشتم منفعت برای نسل اول عموزاده منهای یک خشتم خطر برای نسل اول اموزاده به اضافه یک دوم منفعت برای فرزند منهای یک دوم خطر برای فرزند و غیره حاصل جمع همه اینها عددی است که نمره سود خالص آن الگوی رفتاری نامیده می شود بعد آن حیوان مدل در مجموعه محفوظات خود جمع معادلات این را برای هر الگوی رفتار ممکن دیگر محاسبه می کنند. سرانجام آن الگوی رفتار را اجرا می کند که بیشترین میزان سود خالص را دارد حتی اگر همه نمره ها منفی از آب درآید او باید هنوز عملی را انتخاب کند که بالاترین نمره را داشته و ضررش کمتر از بقیه باشد یادتان باشد انجام هر عمل مثبتی با مصرف زمان و انرژی همراه است که از هر دو اینها می‌شود برای انجام کارهای دیگر استفاده کرد اگر دست به هیچ کاری نزدن رفتاری باشد که بالاترین نمره را دارد آن حیوان مدل به هیچ کاری دست نخواهد زد در اینجا نمونه بسیار ساده داریم که این بار به جای اینکه به شکل شبیه‌سازی در کامپیوتر باشد به صورت یک گفتگو با خود بیان می‌شود من حیوانی هستم که یک کپ قارچ هشتایی را پیدا کرده است بعد از در نظر گرفتن ارزش غذایی آن و کم کردن مقدار به خاطر احتمال کمی خطر از نظر سمی بودن برابردم این است که ارزش هر واحد آن به اضافه شش باشد. این واحد ها مثل فصل قبل دل بخواهیند. قارچه ها آنقدر بزرگند که من میتوانم فقط سه تا از آنها را بخورم. آیا باید دیگران را با سر آبای یافتن غذا از چیزی که پیدا کرده ام با کنم؟ صدای من به چه کسی می رسد؟ برادر ب خویشاوندی او به من یک دوم است. اموزاده سی خیشواندیش با من یک هشتم است. و دی هیچ نسبتی با من ندارد. میزن خویشاوندی او با من عدد کوچکی است که در عمل مثل صفر است. اگر در مورد چیزی که یافتم ساکت بمانم نمره سود خالص برای من، برای هر کس که میخورم، به اضافه شش است. یعنی در خل میشود به اضافه هجده. اگر آوای یافتن قضا را سرده هم، نمره منفعت خالص من باید کمی محاسبه شود. آن هشت قارچ به طور مساوی بین ما چهار نفر تقسیم می شود. حاصل من از دو قارچی که می و هر کدام به اضافه شیشه است، می شود دوازده. اما چون من با برادر و عموزاده امژن مشترک دارم، باید وقتی هر کدام آنها دوتای خود را می نیز سودی به من برسد. نمره واقعی من می شود؟ یک ضرب در دوازده به اضافه یک دوم ض در دوازده، به اضافه یک هم ضرب در دوازده، به اضافه ی صفر ضرب در دوازده، مساوی نوزده و یک دوم. سود خالص مربوطه از رفتار خودخواهن به اضافه 17 بود. این دو رفتار پا به پای هم پیش رفتن اما حکم نهایی حالا مشخص است. باید فریاد غذا را سر دهم. در این مورد ایسارگری من به نفع ژنهای خودخواهم است من برای ساده کردن موضوع فرض کردم که آن حیوان حساب میکند چه چیزی بیشتر از همه به نفع ژنهایش است آنچه در واقعیت رخ میدهد این است که خزانه ژنی پر از می میشود که آن بدن را به نحوی تحت تأثیر قرار میدهند تا به نظر میرسد بدن چنین محاسبات را انجام داده است در هر صورت این محاسبه نسبت به یک محاسبه آرمانی بسیار ابتدایی و تقریبی است. بسیاری از چیزها از جمله سن افراد مربوطه در آن ندیده گرفته شده است. علاوه اگر من تازه غذا خورده باشم، طوری که فقط جا برای یک قارچ داشته باشم، سود خالصی که از سردادن دادن آوای غذا به دست می آورم بیشتر از آن است که در وقت گرسنگی دارم. برای بهتر کردن تدریجی محاسبه ای که در مطلوبترین شرایط ممکن است به آید، نمی شود پایانی در نظر گرفت. نمی توانیم انتظار داشته باشیم حیوانات واقعی برای رسیدن به مناسبترین تصمیم کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرند. ما باید با مشاهده و آزمایش در دنیای حیوانات پیدا کنیم آنها در عمل تا چه حد به یک تحلیل مطلوب از هزینه منفعت نزدیک می شود. فقط برای اینکه به خودمان اطمینان دهیم با این نمونه های ذهنی زیادی از موضوع دور نشدهیم بیایید کمی به زبان ژنی برگردیم. بدن های زنده ماشین هایی بقای هستم که ژن که زنده مانده اند آنها را برنامه ریزی می کنند. هایی که زندهاند این کار را در شرایطی کرده که در مجموع، مانند شرایط محیط زیست آن گونه در زمان گذشته بوده است بنابراین این برآورد هزینه منفعت بر مبنای تجربیات پیشین است درست همانطور که در تصمیم گیری انسان چنین است اما در این مورد تجربه به معنی خاص تجربه یعنی یا دقیق‌تر بگوییم شرایط بقای ژن‌های گذشته است از آنجا که ژنها توانایی یادگیری را هم به ماشین‌های بقا بخشیدند میتوان گفت نوعی برآورد هزینه منفعت بر اساس تجربه فردی هم صورت میگیرد تا وقتی شرایط خیلی زیاد تغییر نکند این برآوردها برآوردهای خوبیاند و ماشینهای بقا روی هم رفته تصمیمهای خوبی میگیرند اگر شرایط کاملا عوض شود ماشینهای بقا در تصمیم تصمیمگیری دچار اشتباه میشوند و ژنا باید مکافات آن را بپردازند دقیقا به همین صورت اگر تصمیم انسان بر مبنای اطلاعات کهنه باشد معمولا نادرست از آب درمی‌آید. برآوردهای خویشاوندی نیز در معرض اشتباه و تردید است. در محاسبات ساده‌ای که ما تاکنون انجام دادیم طوری وانمود کردیم که انگار ماشین بقا می می‌داند چه کسی خشاونده است و چقدر نسبتش نزدیک است. در زندگی واقعی، گاهی داشتن چنین اطلاعات مطمئنی مقدور است. اما بیشتر اوقات میزان خیشاوندی را فقط به صورت یک عدد میانگین می شود برابرد کرد. برای مثال فرض کنید A و B ممکن است برادرهای تنی یا ناتنی باشند. میزان خیشاوندی آنها یک دوم یا یک چهارم است. اما چون نمی دانیم تنیند یا ناتنی میانگین این دو را در نظر می گیریم و از عدد سه هشتم استفاده می کنیم. اگر یقین داشته باشیم مادرشان یکیست؟ اما احتمال این که پدرشان یکی باشد فقط یک به ده است. بنابراین 90 درصد احتمال دارد که برادران ناتنی باشند و ده درصد مطمئن هستیم که تانیان و خیشاوندی آنها در عمل برابر است با یک دهم ده ضرب در یک دوم به اضافه 9 دهم ضرب در یک چهار و مساوی دویست و هزارم. اما وقتی میگوییم 90 درصد اطمینان داریم، این اطمینان به چه کسی بر آیا منظور این است که یک انسان طبیعت شناس بعد از یک مطالعه میدانی مفصل به 90 درصد اطمینان رسیده است یا منظور این است که آن حیوانات 90 درصد مطمئن هستند با کمی شانس احتمالاً این دو به جای یکسانی میرسند. برای اینکه متوجه شویم باید ببینیم حیوانات در عمل چگونه برابرد میکنند که خیشان و نزدیکانشان چه کسانی هستند ما میدانیم خیشان نزدیکمان چه کسانی هستند زیرا این را به ما گفتند چون روی آنها اسم گذاشته ایم چون ازدواج رسمی داریم و چون ما اسناد مکتوب و حافظه خوب داریم موضوع دل مشغولی بسیاری از مردم شناسان اجتماعی در جوامع مورد بررسیشان است منظور آنها خویشاوندی واقعی ژنی نیست. بلکه مفاهیم درونی و فرهنگی مربوط به خیشاوندی است در رسوهای بشری و آیینهای قبیله ای به خیشاوندی اهمیت خاصی داده می شود پرستش نیاکان بسیار متداول است مقررات مربوط به خانواده و وفاداری نسبت به آن بر بیشتر عمر سایه می افکند با نظریه ژنی همیلتون می توان بسیاری از کشتگی ها و درگیری های بین اشیره ها را به راحتی تفسیر نمود. منع زنا با مهارم حاکی از آگاهی زیاد بشر از روابط خیشاوندی است. گرچه امتیازی که منع زنایی با مهار انظر ژنتیکی دارد به ایثارگری مربوط نمی‌شود. احتمالاً فقط به اثر زیانآور ژن های مغلوب مربوط است که خود را در ازدواج های خیشاوندی نشان می‌دهد. به دلیلی بسیاری از مردم شناسان این توضیح را نمی پسندند حیوانات از کجا بدانند اقوامشان کیست یا به عبارت دیگرچه قواعد رفتاری را در پیش بگیرند تا در نتیجه به شکلی غیر مستقیم نشان دهند که اقوام خود را می شناسند قاعده با خیشان خود مهربان باشید این سؤال را مطرح می کند که چگونه خیشان خود را بشناسیم باید از طرف جنها به حیوانات قاعده ای به عنوان راه داده شود. قاعده ای نباشد که نیازی به شناخت همه جانبه ای از هدف نهایی عمل داشته باشد. ما انسان ها با مقررات آشنا هستیم و قدرت آنها به قدری زیاد است که اگر ذهن بسته ای داشته باشیم حتی وقتی کاملا ببینیم هیچ فایده ای برای ما یا کسان دیگر ندارد باز خودمان قاعده را رعایت می کنیم. برای مثال یهودیان سفت و سخت ترجیح می دهند از گرسنگی بمیرند ولی دستور نخوردن گوشتکوک را زیر پا نگذارند. حیوان باید در عمل از شقایده پیروی کند تا در شرایط عادی به طور غیرمستقیم به خیشان نزدیک خود سود برساند. اگر در حیوانات این تمایل وجود داشت که نسبت به آنهایی که از نظر جسمی شبیهشانند با ایسارگری رفتار کنند، شاید به طور غیرمستقیم کمی به درد اقوام خود میخوردند. این امر بیشتر به جزئیات در گونه های مختلف بستگی دارد. در هر صورت، چنین قاعده فقط منجر به می می‌شود که از نظر آماری درستند. اگر شرایط تغییر کند، مثلا گونی بخواهد در گروه‌های خیلی بزرگتر زندگی کند، ممکن است تصمیم‌هایش نادرست از آب درآید. احتمالاً تعصبات نژادی را می‌توان عمومیت دادن تمایل غیرمنطقی به انتخاب خیشاوند برای احساس همبستگی با کسانی که از نظر ظاهر به ما شبیهند و خشن بودن با افرادی که از نظر ظاهر متفاوتند. در گونه‌ای که اعضای آن حرکت چندانی ندارند یا حرکت آن اعضا به صورت گروهی است احتمال اینکه بر فرد اتفاقی که بر تقریبا یک خیشاوند نزدیک آنها باشد زیاد است. در چنین موردی قاعده با هر عضو گونه خود مهربان باشید می میتواند از نظر بقا دارای ارزش مثبت باشد به این مفهوم که اگر ژنی دارندگان خود را راقب به پیروی از این قاعده کند احتمالا تعدادش در خزانه ژنی افزوده خواهد شد شاید به همین دلیل باشد که در گروههای میمونها و نهنگها اینقدر موارد از رفتار ایسارگرانه گزارش شده است نهنگ و دولفین اگر از هوا نفس نکشند خفه میشوند دیده شده است که بچه نهنگ ها با آنهایی که آسیب دیدند و نمی توانند تا سطح آب شنا کنند توسط همراهان که در گروه هند بالا نگه داشته شدند. معلوم نیست که آیا نهنگها راهی دارند که به آن خیشان نزدیک خود را بشناسند یا خیر؟ اما شاید این امر مهم نباشد. احتمال اینکه هر هر عضو اتفاقی گروه یک قوم باشد آنقدر زیاد است که ایسارگری به هزینهش می ارزد. از غذا دست کم یک ماجره کاملا تعیید شده از انسان شناگری که توسطی دلفین وحشی نجات یافته وجود دارد. این را میتوان نقیز قاعده نجات عضو گروه از قرق شدن دانست. اما در این قاعده تعریف عضوی از گروه که در حال قرق شدن است شاید چنین چیزی باشد. یک چیز دراز که در حال دست و زدن و خفگیست و نزدیک سد قرار دارد. بابون نر بالغی را گزارش کردن که برای دفاع از بقیه گروه جان خود را در مقابل شکارگرهای مانند پلنگ به خطر میاندازن این احتمال زیاد است که تعداد زیادی از جنهای هر نر بالغ به صورت پراکنده در افراد دیگر گروه وجود داشته باشد در نتیجه شمار ژنی که میگوید بدن اگر نر بالغ هستی از گروه در مقابل پلنگ دفاع کن در خزانه ژنی افزایش پیدا می کند دور از انصاف نیست که قبل از رد شدن از این مثال بسیار نقل شده اضافه کنم که حداقل یک مقام زیسلا چیز بسیار متفاوتی را گزارش کرده است او میگوید وقتی سر و پلنگی پیدا شود اولین کسانی که در میروند نرهای بالغ